حائز فصل آخر سال است نویسنده نسیم مرعشی با صدای بهناز جعفری شیما جان قربان رازیه هاشمی تکی اول دنبال تو میدویدم روی سرامیک های سرد و سفید سالن در آن سکوت ترسناک هزار ساله هن نه هن نفس با هر گام بلندتر در گوشم تکرار می شد و گلویم را تلخ می‌کرد. بخش پروازهای خارجی آن طرف بود. امام نه، مهرآباد بود انگار و سالن پروازش هی دورتر میشد. رسیدم به گیت، پشتت به من بود اما شناختمت. کت نیلی ات بود و چمدان به دست منتظر آرامی ایستاده بودی. روشنی سالن به سفیدی میزد. فقط نور می دیدم و تو را. این نیلی روی سفیدی مطلق. صدایت زدم. راه افتادی و دور شدی. سر میخوردی روی سرامیک سالن. دویدم، دستم را دراز کردم و دستت را گرفتم، برگشتی، دستت توی دستم ماند و هوا ما پرید. روی لبه خوابم هنوز، لبه زجرآور خوابیدن و بیدار ماندن که خمیازهای تمام نشدنی را در سلول های تنم نگه می دارد، چشم هایم را سخت باز می کنم تا زجر تمام شود، در نیمه باز کمد را جلو می بینم و چرا خواب خاموش را روی میز کوچکی که پر از لیوان کسیف و یک ساعت خوابیده و چند کتاب است کتاب های تو روی ملافه کنارم دست می کشم نیستی؟ هیچ کس نیست اینجا کجاست؟ چند سالم است؟ چند شنبه است؟ نمی دانم حالم را ولی می دانم که بد است تهه گلویم است و چیزی در سینهام پرپر میزند زند تشنم. باید یادم بیاید دست چپم را از زیر تنم بیرون میکشم. ساعت فلزی روی مچ عرق کردم جا انداخته یازده و پنج دقیقه چرا چرانقدیر چشمهایم را می بندم و مغزم را توی مشت فشار می دهم فکر می کنم به دیروز به پریروز یادم میآید. یک شنبه امروز برای کار قرار دارم. پتو را کنار میزنم گوشی را که برداشتم گفت: سلام لیلا خانم. امیر صالحی هستم. شماره شما را از ساغر گرفتم. گفت: دارن یک روزنامه جدید در میآورند. گفت هر روز سه صفحه فرهنگی دارند. یک صفحه‌اش ظهر رود برای چاپ، دو صفحهش عصر. گفت اگر فرصت دارم و اگر دوست دارم یک شنبه عصر سری بهشان بزنم. فرصت دارم هر چقدر که بخواهد در این چهار ماه غیر از وقت بی مصرف چیز دیگری نداشتم وقتی که به هیچ می و از عمر نیست نه از آن کم می کند و نه چیزی به آن اضافه می کند با سردبیر هفته که در آن کار می کردم کنار نمی آمدم چهار ماه پیش بود که آمد جلی میزم ایستاد و گفت مطلبت مال من است و می توانم هر تغییری که دلم بخواهد در آن بدهم را کاغتهایم رو کردم. گفتگر کرده ای چه می نویسی که نمی شود حتی یک کلمه اش را تغییر داد گفت دیگر نمی‌خواهم بشنوم که آمده یا اعتراض کرده ای گیوم را رو روی شانه انداختم و گفتم دیگر نمی‌شنوید و بیرون آمدم نمیفهمید که تغییرش متن را که نوشته بودم خراب کرده بود از وقتی بیرون آمدم هر روز صبح بیدار شدم و خورشید را قدم به قدم دیدم که آسمان را گذرانده تا شب شده و خوابیدم کار دیگری یادم نمیآید کرده باشم گاهی روجا را دیدم یا شبانه را آمدند اینجا یا رفته این بیرون چیزی خورده ایم و باز برگشتم خانه یک بار هم بابا آمد و با هم رفتیم اهواز مامان و بقیه ی فامیل را دیدم سه روز یا چهار روز یادم نیست فرصت دارم برای کار هر چقدر که بخواهد اما دوست نمیدانم دارم یا نه باید داشته باشم حتما دارم قبلا کارم را دوست داشتم تو باید خوب بدانی سر کار می خندیدم یادت هست حالا اما چه کار دوست دارم بکنم غیر از دراز کشیدن و شمردن روزهای باقی مانده نمیدانم. بابا گفت بیا بذارم نفت توی رشته خودت کار کن حقوق خوب بگیر آینده تو بساز پیش خودمونم هستی نمیخواهم برگردم اهواز. آدم که راه رفته را بر نمی همان سه چهار روزی که آنجا بودم فهمیدم نمیتوانم بمانم. احواز گرم است. هرم گرما از زمین بلند می شود و روی سینه ی آدم هوار می شود. چقدر اصب روی جده ساحلی و برگردی بشود بیست دقیقه. چقدر زیر باد کولر که بوی خوب خاک می مجله بخوانی بخانی. چقدر اصحاب روی بازار کیان با زنهای عرب سر روتب و ماهی زبیدی چانه بزنی و بخندی. این بار که رفتم، اهواز کوچک شده بود انگار. کوچکتر از کودکیم. با چهار قدم از هر خیابانی رد می شدم. چهار شیر وصل شده بود به فلکه ای نخلها. فلکه ای نخلها وست شده بود به ست خلف. حیاتهای کوچک و سنگرهای اندازه قوطی کبرید. وقتی خیره می شدم بهشان تصویرهای کودکیم رو به هم میریخت و خاطرهایم رو گم می کرد. شبها آنجا قرار نمی گرفتم. دلم خانه خودم را میخواست تختم را تختمان را شبانه گفت بیا شرکت نیروی جدید میخوان مثل سالای دانشگاه همه دوره هم خوش میگذره خوش نمیگذرد میدانم هر روز باید بنشینم پشت میز و روی کاغذ و نقشه و مانیتور و همه جا عدد بنویسم چهارها قاطی دوها میشوند دوها قاطی پنجها و همه پشت سر هم ردیف میشوند و مغزم رو میجوند پشتشان منفی میآید و ممیز سفر نقطه سه سفر نقطه هشت قطر شفت زب در ارتفاع پره می شود طول پیستون منهای اندازه سیلن می شود و اینها دیوانه هم می کند مثل سالهای دانشگاه شبانه نمی توی خودش و روجا سرش را رو می کند توی کامپیوتر کسی با من حرف نمی زند درم دفتر دلگیر تنها می مانم روجا گفت جمع کن بریم تو امتون زبان تو بده؟ پذیرشو ویزات با من؟ میمونی اینجا چی کار کنی؟ اگر میخواستم برم با میساق میرفتم لج میکنی لیلا با خودت لج میکنی نمیخواهم بروم چرا هیچکس حرفم رو نمیفهمد حالا حتی اگر بخواهم دیگر زورم به این کارها نمیرسد زورم به اندازه روجا یا به اندازه تو نیست رفتن رو از نزدیک دیدم در خانه خودم بودی و دانه دانه از هر کاغذی که آماده کردی نرد بام ساختی و قدم به قدم دور شدی از من. سخت بود هزار تا نامه و مدرک جمع کردی دادی برای ترجمه مهر زدی امضا کردی وقت سفارت گرفتی وقت سفارت امروز یک شنبه است و رجا صبح زود وقت سفارت داشت گفته بودم بیدارش میکنم چرا یادم رفت دستگاه مشترک مورد نظر حتما به موقع بیدار شده و رفته که گوشیش خاموش است رجا که از قرار جا نمی ماند رجا قوی است. مثل تو. سرم گیج می رود. باید چای درست کنم و چیزی بخورم. پایم را که از اتاق بیرون میگذارم به هم ریختگی خانه آوار می شود روی تنم. زیر سیگاری پر از تحسیگار شده. بعدت میآمد و زود خالیشان میکردی. می, کردی. می گفتی خانه بوی خوابگاه می گیرد. های کثیف پر از دست کاغذی و چربی خشک شده غذاهای های خورده پخشند روی پیشخان. تابلوهای روی دیوار یک بنده انگشت خاک گرفتند. شیشه میز پر از جای انگشت کثیف شده و روزنامه های نخونده دیروز و پریروز و تمام هفته پیش روی آن پخش است. مانتوم افتاده روی دسته مبل. برمیگردم توی اتاق و زیر پتو پناه می گیرم. اینجا خانه من نیست. باید روزی را که از من فرار می کند پیدا کنم و خانه را شبیه خانه کنم. اگر رفتم سر کار خوب شدم و خوب ماندم، باز به خانه میرسم. همه چیز را مرتب می کنم، لامپ های را عوض می کنم، قرمزم را می دهم درست کنند، کسیف شدند و فنرهایشان خوابیده. پولیش لازم دارند و چند دکمه سفید که مثل روز اولشان شوند، دوستشان نداشتی، خسته شده بودی از رنگشان، از اول گفته بودی خسته می شوی. از همون روزی که رفته بودیم خرید، من و تو و روجا و شبانه کلاس ظهرمان را نرفتیم و از دانشگاه آمدیم بیرون. مامان هنوز نرسیده بود تهران. رفته بودیم موب شهر را ببینیم و یکیشان را انتخاب کنیم تا مامان را از این ور تهران به آنور رژ می میگفت برویم یافت فتاباد: حوصله این همه راه را نداشتم. گفتم یک بار است ولی می دانستم آخرش برای دو سه تیر و تخته میخواهد صد بار مرا بکشاند تا ته شهر رو برگرداند. تو میگفتی بگذاریم روجا هر کاری دلش میخواهد بکند و شبانه مثل همیشه نگاهش به ما بود و چیزی نمیگفت. از جهان کودک رد میشدیم که چشمم خورد به آن مغازه بزرگ. های قرمز پشت شیشه با آن ها و های بزرگ سفید دلم را برد. گفتی مبل قرمز؟ چند روز دیگر خسته میشوی از آنها. آن کرم و قهوهی ها را نگاه کن چقدر قشنگند. اخم‌های روجا رفت توی هم. مگه چند سالتونه؟ حالا وقتشه که مبل قرمز بخرید. وقتی پیر شدید برید با خیال راحت روی این یه زش بشینین و نواهاتونو بغل کنی. قرمزها رو دوست داشتم. خسته نمی شدم از آنها. میدانستم. نگاه کردم به شبانه نظری نداشت. نمی‌خواستم برام یافتاب همانها را رو می‌خواستم. همان قرمزها رو که گران و جیغ بودند و ایمان را شاد می‌کردند، مثل خودمان. زنگ زدم به بابا. فکر پولشو نکن بابا جون. چند سال میخوای رونا بشینیم، هر رنگی دوست داری بخر، هر چیزی که میخوای. خریدمشان، ناراضی نبودی، دست میکشیدی به گلهایشان و میگفتی نرمند. بعد که مامان رسید رفتیم پرده قهوهی خریدیم که دکوراسیون خانه هم سلیقه من باشد، هم تو. پرده دیگر کهنه شدند بعد از هفت سال. باید عوضشان کنم. اگر رفتم سر کارو خوب شدم، می نشینم و فکر می کنم چه رنگی بیشتر از این قهوه تیره به قرمز میآید و پردهها را نو می کنم. خانه را دوباره قشنگ می کنم. هر وقت دوباره خوب شدم. دلم چای میخواهد. حال را از نگاهم پنهان می کنم و میروم آشپزخانه. کتری پر از لکه های هفت رنگ را برمیدارم. زنگینیاش مرا یاد جرمگیری می اندازد که هزار سال از یادم رفته بخرم. پرش می کنم و میگذارم روی اجاق گاز. کنار تمام چربی های زرد و قرمز خشکیده و دانه‌های برشته برنج و رشته های پر از لکه که به آنها چسبیدند نگاه میکنم به جای انگشت‌های های کثیفم روی دستگیره یخچال. به کابینت ها که پر از خورده نان و کیسه های خالی است و این لکه ماست خشک شده که با حیبت زرد زشت کویری تکه تکه شده اش حالم را به هم می زند. از سینک بوی ظرف کثیف چند روزه می‌آید. باید بگویم ملوک خانم بیاید و تمیزشان کند. ماه هاست که باید زنگ بزنم. اما تحمولم بس نیست برای اینکه صبح تا اسبار سرش بیستم و به داستان زندگی دختر بیچاره طلاق گرفته و خواهر شوهر فلجش که 20 سال است و بال گردنش شده گوش بدهم. کاش مامان می آمد. حال خوش زندگی را پخش می کرد در خانه. ملوک خانم را میآورد فریزه را پر می کرد. توی خانه بوی غذایش میپیچید و مینشست و حرف میزد و حرف میزد از خاله می گفت که ماشین نو خریده از زنمون که چند وقت از زنگ نزده حال پدر بزرگ را بپرسد از بابا که چقدر دلش برای من و سمیرا تنگ شده و هر شب که از می میآید دلش دو دخترش را میخواهد که سر شام کنارش باشند از دختر خالهش که با دو بچه دوقلوش چه میکند و اینکه بچه سامی را چه کلمه فارسی دیگری یاد گرفته و چقدر قشگان را می گوید. من هم می نشستم جلوش روی مبل، چای تازه خوش رنگ می نوشیدم و پر پر شده پرپرشده میخوردم و به صدایش که در خانه میپیچید گوش میدادم و همینطور الکی نو نوچ می کردم. آب جوش را که می ریزم توی لیوان رگه های قهوهی دود میشون توی آب و پیچ و تاب میخورند. نخ کیسه چای را می کشم. رگه ها با هم قاطی میشوند و برایم چای فوری درست میکنند. نیستی و با خیال راحت، گوری را در بالاترین کابینت قایم کردم و فقط چای فوری میخورم. باید چای بخورم تا سرحال شوم باید سرحال بروم سر کار دارم میروم سر کاری که همیشه دوست داشتم کاری که خوشحالم می کرد. باید باز هم دوستش داشته باشم چرا ندارم؟ چرا هیچ چیز این روزها دیگر مرا نمی خنداند؟ به خاطر بیکاری است حتما؟ باید چیزی داشته باشم که مرا فرو ببرد توی خودش و نگذارد بفهمم کجا هستم. باید روزهایم را بگذراند. باید حواسم را پرت کند از همه چیز. حواسم که به چیزی پرت نمی شود، فکرها پیدایشان می شود. خودم را ول می کنم روی مبل قرمز و هزار ساعتم که بنشینم انشینم سر نمی رود. بس که فکر می توی سرم. فکر خودم، تو، سمیرا، زندگی شبانه و ماهان، فکر اینکه که چرا به اینجا رسیدیم؟ کجا را اشتباه کردیم؟ کجای خلقت و با کدام فشار شالوده من ترک خورد که بدون اینکه بدانیم برای چه با یک باد طوری آوار شدیم روی خودمان که دیگر نمیتوانیم از جایمان بلند شویم؟ نمیتوانیم خودمان را بتکانیم و دوباره بایستیم و اگر بتوانیم آنی نیستیم که قبل از آوار بوده ایم. اشتباه کدام تر راه بود که فشارها را درست محاسبه نکرد و سازه ایمان را طوری غیر مقاوم ساخت که هر روز میتواند برای شکستنمان چیزی داشته باشد. فکر زندگی بیخنده و بیارز و تکه تکه می کند. مثل لکه زشت زرد ماست روی پیش خانه, خانه اما کار که داشته باشم دیگر فکر نمی کنم. کار میکنم و خسته میشوم و بعدش خستگیم را بغل میکنم و آرام آرام میخوابم رژ گفت: چرا انقدر خود تو اذیت می تو که نیازی نداری به کار؟ چرا نمیفهمید زندگی لعنتی من همین یک دل خوشی را دارد؟ فقط همین یکی را از وقتی رفته ای چیز دیگری در آن باقی نگذاشته ای؟ اما حالا باید خوشحال باشم. باید خوشحالیم یادم بیاید؟ سرم را در دستهایم فشار می دهم و دنبال صدای خنده بلند خودم می گردم. بیا دیگه انقدر نیس لیلی؟ دیرمون شده. خواهش میکنم. فقط یک دقیقه. نمیتونم. دستم توی دست تو بود و بلند بلند میخندیدم. کنار خیابان تا شده بودم. نفسم از خنده بند آمده بود و دردی را که در دلم پیچیده بود یادم است. دستم را میکشیدی. دیرمون شده بود. به چه میخندیدم؟ یادم نیست. فقط یادم است انقلاب بودیم. سینما بهمن. فیلم بعدی از جشواره دیده بودیم و برمیگشتیم دانشگاه خیابان کارگر، بین سیدی فروش ها و سبوس فروش ها پرینت ارزان لباس دست دوم و کلیچه فومن، دنبال تاکسی میچرخیدیم و از لای دست و کتف و کمر مردم رد می شدیم تو بلوز سفیدی را که صمی را برایت فرستاده بود پوشیده بودی مردی از روبه رو با سرعت به طرفمان آمد سرش پایین بود دستم را رها کردی که رد شود باز خندیدم. مرد نگاه هم کرد، یک آن مردد شد و به سمتم آمدی مرد سرش را که بلند کرد دیگر دیر شده بود سرش خورد توی سینت و لیوان آبنارش لپ پر زد روی بلوز سفیدت و لکه شد که تا وقتی کنارم بودی نه با جوش شیرین رفت، نه با سرکه، نه وایتکس تکس، نه لکه بر رافونه که آخرین مار بهش زدم و توی چمدانت گذاشتم و گفتم فقط تو خونه بپوش، وقتی کسی نیست چای سرد شدم را یک نفس سر میکشم. صدایش تکانم می دهد. از سکوت خانه است که صدای قرد دادن انقدر بلند در سرم می پیچد یا از گوش که دیگر عادت به شنیدن ندارند. عادت کردم به سکوت خالی خانه. به خفگی هوا و زندانی شدن پشت پنجره های دو جداره بی صدا. حتی دوست ندارم ساز هم بزنم. چند ماه می شود که پشت پیانو ننشستم؟ چهار ماه، هشت ماه، یادم نیست، انگشت هایم را باز می کنم. مشت می کنم و دوباره باز می باز باز، درد تا مچهایم بالا می رود، انگشت هایم دیگر نه نرمند، نه سبک، کوتاه و زشت شدند، بندهایشان زخیم و سفت شدند و با هر تکان ای درد می گیرند، با این درد و این ناخونهای بلند و بدقباره که لیز می روی کراویه دیگر نمیتوانم پاساژ والس لامینوری را که دوست داشتی بزنم. آمدی نشستی کنارم روی صندلی پیانو. گفتی دوست دارم که ناخونات همیشه و بهشون لاک نمیزنی. گفتم به خاطر پیانوست و یادت دادم می میمینور باس را سر هر زب نگه داری تا من قطعه ای از شپم بزنم. گفتی همون روز آشقت شدم، همون روزی که توی آمفیتوات رو دانشگاه نشستی پشت ساز و گمونم چیزی از شوپن زدی، میدونستی دارم نگات میکنم، واقعا داشتی نگاه هم میکردی، فکر میکردم من اول آشقت شدم، روز اعتصاب که مطمئنتر از همه بچه ها روی بالاترین پله انجمن انجامن سنفی نشسته بودی و کلاه مخمل فرانسوی سرت بود، هنوزم دوست دارم وقتی ساز میزنی و حواست نیست به انگشتات نگاه کنم که می رو ساز. تمرین که می کردم می دانستم ایستاده ای توی چارچوب در و اتاق و نگاهم می کنی. چطور ساز بزنم وقتی نیستی و نگاهم نمی کنی. نیستی و انگشتایم رقصیدن یادشان رفته. خشک شدن و دیگر چیزی از شپن یادم نیست. باید درستش کنم. وقتی رفتم سر کار و روز خوبی را که از من فرار می کند پیدا کردم، پیانو را می دهم ریگلاژ کنند. دوباره تمرین می کنم تا انگاشت هایم مثل روزهای نرفتند بشوند. باید پارتیتورهایم هایم را پیدا کنم. چرا امروز سلانه سلانه می رود؟ ساعت هنوز یک نشده. لپتاپم را روشن می کنم و ایمیل هایم را به امید چیزی که هیچ وقت نیست باز می کنم. مهم، مهم، مهم، ز روش برای جلوگیری از سرطان سینه. مانکن زیبای ایرانی در نیویورک همه را پاک می کنم. صفحه ها را می بندم و وبلاگم را بالا میآورم. پست دیروزم یازده نظر دارد. از پیشنهاد کار جدیدم نوشتم. از سالهی. از روزنامه و روزهای خوب روبرو. از خوشحال کننده ترین نگرانی های دنیا. نوشتند. به سلامتی. شیرینی ما چه می شود؟ چه عجب بالاخره چیزی نوشتی، یک سری هم به ما بزن و چیزهایی مثل همین دوست دارم که نمیبینمشان. دوست دارم هر وقت میخواهم چیزی بگویم، از دور بگویم و قایم شوم و هر وقت میخواهم جواب بشنوم از دور بشنوم نمیخواهم کسی جلو بنشیند و نگاه هم کند و منتظر حرفی باشد. روزنامه را هم برای همین دوست دارم. دوست دارم توی تحریریه بنشینم و بنویسم و فردا پشت چنار بزرگ کوچه روبروی کیوسک پییسم و ببینم چند نفر موقع ورق زدن خیره میشوند به تیتر مطلبی که نوشتم. تلفن زنگ میخورد. راجاس میگوید کارش تمام شده. کی باید سر کار باشی؟ ساعت 4 و نیم میگویم بیدار بودم تا آفتاب زد اما یادم رفت بیدارت کنم. به موقع رسیدی؟ به موقع رسیده میگوید برویم ناهار تازه ساعت یک کنیم از تو تا قرار روزنامه کلی وقت دارم که باید بگذرد میگوید میای حوصله ندارم الان برم سر کار ناهار میخوریم بعد من میرم شرکت تو هم برو روزنامه چیزی پاهایم را بسته میگویم نمیدانم یعنی چه که نمیدونی بیا بریم دیگه من ماشین ندارم دورو با پادانا سره فر باش. با هم یه جایی میریم. میای. وقتی سکوت میکنی یعنی موافقی؟ وقتی سکوت میکنم یعنی موافقم؟ نه. نیستم. من وقتی موافق باشم سکوت نمی کنم. میخندم. دهانم را باز میکنم و میگویم بله موافقم. اما سکوت میدانم که نمی کنم. شاید آن روز هم سکوت کرده بودم که فکر کردی با رفتنت موافقم. ساکت نشسته بودم و چمدانت را میبستم موافق نبودم فقط ساکت بودم و تو بدون من رفتی. رفتی و پدر مادرت را دیدی. حتما کلی خندیدی و سر به سر مادرت گذاشتی و گفتی دلتنگی نکند. حتما خاله هایت را که آمده بودند تو را قبل از رفتن ببینن بغل کردی و بوسیدی و گفتی زود بر میگردی. دو سه بار چمدانت را باز کردم و مطمئن شدم چیزی جا نمانده و دوباره بستمش و همهش ساکت بودم. در شهر چرخیدی و با بچه ها خداحافظی کردی. حتما سفارش کردی مرا تنها نگذارند و هوایم را داشته باشند. وقتی نیستی. من سکوت کرده بودم و برای آخرین بار ها زیپ چمدانت را می کشیدم و تو حتما با همه خوشوبش می کردی و به کسانی که تنهایشان بگذاری لبخندهای امیدوار میزدی. در چمدان رو قفل کردم. در خانه را باز کردی و آمدی تو. من ساکت بودم، اما موافق می‌دارم که نبودم. فکر می‌کردم نمی‌روی. منتظر بودم بیایی تو اتاق، مرا ببوسی و بگویی پشیمان شدم. تو موافق نباشی هیچ جا نمی‌روم. منتظر بودم بیایی و بگویی معلوم است که تنهایت نمیگذارم کجا بروم بدون تو؟ مطمئن بودم نمی‌روی. حتی وقتی به آژانس زنگ زدی و گفتی می فرودگاه امام، با خودم گفتم نمی بدون من. ایستادم توی چهارچوب در، لباست را عوض کردی. نگاهم را برگرداندم. پیراهن و پلیور نو پوشیدی. اتیکت هایشان را درآورده بودم و گذاشته بودم روی تخت. خودم برای رفتنت خریده بودم و حواستم بود که شیکترین مسافر هواپیما باشی. پیراهن راه راه یاسی و پلیور خاکستری و شلوار جین تیره. نیلیت روی تخت بود. گولهت را نگاه کردی. زیپ بالایش را باز کردی و لباس لباسهایی را که در آوردی در آن بگذاری. لباس نون زیاد برات گذاشتم. اینا را نبر. گفتی باشد. نگاه هم نکردی. جورابت را برداشتی. رفتم توی حال و نشستم روی مبل و کتابم را دست گرفتم. نباید گریه می کردم، تو نمی مطمئن بودم نمی بدون من، می مرا به صدای صدایی چرخ چمدان آمد، جلوی در بودی، از بالای کتاب نگاهت کردم، کت نیلی را پوشیده بودی، کوله را زمین گذاشتی، کفشهایت را پا کردی و بندشان را آرام آرام بستی نگاهت که سمتم چرخید سرم را پایین انداختم بیا بقلم نیامدم رفتم توی اتاق و در را بستم لباسهایت روی تخت بود تنها هجم روشنی از تو که بی تو در خانه مانده بود گوش دادم تا صدای باز و بسته شدن درآمد و صدای چرخهای چمدان که دور می‌شدند. نباید گریه می کردم. تو برمیگشتی. مطمئن بودم، نمی توانستی بدون من بمانی و زندگی کنی و خوشبخت باشی، خیلی زود برمیگشتی. شاید از فرودگاه، شاید فردا یا پس فردا، بین همه لباس هایم جین تیره و مانتوی خاکستری می پوشم، می بینی؟ شبیه تو شدم وقتی داشتی می رفتی سراغ زندگی جدیدت، دارم میروم سراغ زندگی جدیدم و شبیه تو بودن، حتما نشانه خوب است برایم. صورتم را در آینه نگاه می کنن. چند روز از آرایش نکردم که دور چشمهایم اینقدر تمیز است. هرچه در کیفم هست دنبال مداد چشم می ریزم روی تخت. گوشه چشمم را با دست چپ می کشم تا چروکهایش باز شود و بالای موجه خط سیاه می کشم. کج می شود مثل همیشه. مثل تمام خطهای زندگیم که کشیدم و کچ شد و پاک کردم و باز کشیدم و باز کج بود مثل شبهای مشق که صد بار با مداد قرمز لای باباهای سیاه خط می‌گذاشتم و خراب می‌شد و پاک می‌کردم و باز می‌کشیدم و باز خراب می‌شد و من می‌ماندم و دفتر پاره به سمیرا التماس می‌کردم که برایم خط بکشد نمیکشید و می‌گفت دیوان خوب است ها و من با چشم‌های خیز باز پاک می‌کردم و باز می نوشتم. دیگر هم پاک کردن ندارم. رویش باز خط میکشم تا پهن شود و کج و کلگیش گم شود در سیاهی مداد. همه شال هم در کمد روی هم ریخته. سیاه ساده، آبی چارخانه، کرم با گلهای نارنجی، ارقوانی و قهوه دورنگ و دوباره سیاه. یکی زشت هست و یکی چروک شال بنافشم را می کشم بیرون. از چند ماه پیش که آن را با رجا خریدیم هنوز سر نکردم و نو نو مانده برای امروز. همین و بردار پوست سفید بهت میاد. عادت کم پوشیدن رنگای شاد. باید عادت کنم به پوشیدن رنگ های شاد به خوشحال و سرحال بودن. دارم میروم سر کار؟ کاری که از هزار سال پیش دوست داشتم. دنبال رژ لب شاد میروم سراغ کشو زیر آینه. ن هنوز هست. صورت تیره است و بوی ماندگی می دهد می مالم روی لبهایم. زشت شده با پشت دست پاکش می کنم همین اثر سرخی که گذاشته کافی است مهمانی که نمیروم پژوه سیاه جلوی امروز نیست و میتوانم یک ضرب از پارکینگ بیرون بیایم. نشانه خوبی است حتما امروز قرار از خوب بگذرد. میپیچم توی اتوبان گیر میکنم میان هجوم ماشینها و راننده های عرق کرده و بوغ و هوای سنگین این وقت زر که وقت ترافیک نیست چرا نمیخواهد خوب بگذرد ماشین درست راه نمیرو و توپاهایم روی گاز و ترمز خوب نمینشینند مگر چند وقت از رانندگی نکردم کوله را روشن میکنم باد گردنم را خنک میکند اما صندلی با تنم نمیسازد جا بجا مانتوم را زیرم مرتب می کنم را می کشم جلو پشتیاش را می کمربندم را باز می کنم فایده ای ندارد شیشه را می کشم پایین تا هوا بیاید هوا گرم است گرم و کثیف. گرمای مانده مرداد با گرمای تازه خرداد فرق دارد گرمای خرداد نو است و آفتاب تمیزش نور می ریزد روی آدم مرداد اما چرک و چربست و بوی گند ماندگی می حتی آفتابش هم از لایه کلی که رد می شود و می چسبد به تن و هیچ راهی برای خلاص شدن از بوی مرده و خفهش نیست دلم میخواهد همین حالا برگردم خانه و بنشینم زیر قطرهای خونه که دوش و سرم را تکیه بدهم به دیوار و به صدای ریختن آب سرد روی های آبی گوش کنم ماشینی پشت سرم بغ میزند. چیزی در سینه میکوبد. هوا نیست دارم خفه می شود انگشت هایم در کیف از لای موبایل و کیف پول و هدفون و خود نویس و پاکت سیگارهای خشک شده و دفترچه می و بسته دیاز را پیدا میکنند. قرص سبز، کوچک و لیزه است و بدون آب راحت می رود پایین. استراب داری بابا جون؟ کن تو فشار محیطی قرار نگیری. هر وقت تپش قلب داشتی یکی بخور. خوابت نمیگیره معتادتم نمیکنه. فقط نمی کنه. فقط زیاده روی نکن چند وقت بود که قلبم زرب می زد زرد میزد وقتی وقتش نبود محکم به دیوارهای سینه‌ام می‌کوبید و چیزی از آن جاری میشد در تنم بعد تونتون تون آنقدر که نفسم را بند میآورد. ترسیدم در خواب سکته کنم بیدار شوم از خفگی و کسی نباشد بلندم کند آنقدر نفس نفس بزنم تا سیاه شوم و بمیرم بعد تا چند روز کسی پیدایم نکند و بگندم و بو بگیرم خجالت کشیدم از آنهایی که در خانه را می شکنند و از بوی فساد جسد سیاه شدم جلوی دماغشان دستمال سفید می گیرند. رفتم پیش هم دانشگاهی قدیمی بابا، نوار قلب گرفت و اکو و به بابا زنگ زد. قلبش هیچ مشکلی نداره؟ بابا گفت برایم دیاز بنویسد. گوشی را گرفت و با من حرف زد. وقتی نگران میشه یکی بخور. می خوای تا هم وقت بیای پیش ما. نه میخوای من یا مامان چند روز بیایم تهران میخوای بگم سمی را دعوتنامه بفرسته یه مدت بری فرانسه نمیخواستم زورم به رفتن نمی رسید، نه به اهواز نه به فرانسه نه به هیچ جای دیگر دلم فقط تختم را میخواست تختمان را مثل حالا که زورم به این همه ماشین نمی رسد و دلم میخواهد دست بزرگی بیاید و برم دارد بگذارد وسط زمستان توی کوچه ببمب است زیر سایه یک چنار بزرگ دلم میخواهد محکم بکوبم به ماشین جلویی و آنقدر گاز بدهم تا ها یکی یکی پاره شوند و له شوند و من از وسطشان رد شوم میپیچم توی نیلوفر از جلوی شکلات فروشی و ساندویچی و دونر و فسفود و اسباب بازی و کلانتری رد می‌شوم و میرسم به روجا که سر خیابان ایستاده و با تلفن حرف می‌زند صدایش که میکنم برمیگردد گردد را قرمز کرده و چقدر به سبز تیره چشهایش میآید مینشیند و خداحافظی می میگویم موها چه خوب شده؟ ات میاد دست می کشد به موها دیروز رنگ کردم برای سفارت خودم رنگش رو دوست دارم چطوری؟ نسه همیشه. سفارت چی شد؟ مدارکم او گرفتن گفتم بین سه هفته تا سه ما جواب میدن. ملخره سه هفته یا سه ماه نمیدونم نگفتن شیشه را میکشد پایین و شالش را باز میکنه خیلی گرسنمه کجا بریم هر جا فرقی نمیکنه یعنی چه که فرقی نمیکنه حال آدمو میگیری با این بیزغی بریم بندر تر هم که داری بندر نزدیک است میپیچم توی مهناز دست میکنه در کیفش و چند دیویدی میگذارد روی صندلی عقب اینا رو ببین همه خوبن از بین صد تا فیلم انتخابشون کردم. ممنون چه خبر از شبانه بد نیست بعد از روزنامه بیا شرکت ببینش نمیدونم کارم تا کی طول میکشه خوبه با هر سلام یه روز خوبه یه روز بد پسر بعدی نیست شبانه بالاخره بعدی بعد یکی رو پیدا میکر. چرا هیچی به صورتت نزدی؟ زدم معلوم نیست؟ واقعا فکر میکنی زدی؟ روز اولیه که میخوایی بری سر کار، یکم روشگونه میزدی اینه میگه تا نباشی به ترسه اینجا که جا نیست، کجا پارک کنن؟ بیزر جلو این در، حواسمون هست به ماشین. اینجا نمیشه، جلوی پارکینگ مردمه. تو پارک کن، بقیهش با من. پیاده شوم بقیهش برو جاست. همیشه بهترین راه ها رو برای بقیه هر چیز پیدا میکند. ترم چهار بودیم و دلم پرپر میزد. برای میساق که یکجا بند نمی‌شد و یک روز حس می‌کردم مرا می‌خواهد و یک روز نه. روجا که قرار شد بیاید اردوی تبریز گفت تو فقط بیا و خانم باش، بقیهش با من. وقتی از سفر برگشتیم من مال میساق شده بودم و سال بعد با هم در یک خانه بودیم. روجا از توی کیفش قلم و کاغذ بیرون میآورد و می‌نویسد ما توی رستورانیم. زیرش یک شکلک خندان میکشد و کنارش یک ساندویچ گنده‌ای پر از کاهو و زیر برف می می‌گذارد. دستم را میکشد و می برد توی رستوران که خنک و شلوغ است و جایی نیست برای نشستن. می‌رود روی یکی از سندلی های میز 4 نفری می‌نشیند که یک نفر پشت آن غذا میخورد. ببخشید آقا میشه ما اینجا بشینیم؟ دستش را میکشم و آرام میگویم راحت نیستم. اشاره می کند به غذای مرد. الان میره نگاه کن قغاش تموم شده کیف و را رو پهن میکند روی میز چسبیده به پیتزای نیم خورده مرد چی میخوری فرقی برات نمیکنه که خودم یه چیزی میگیرم میرود پشت پیشخان. راحت نیستم کنار مرد بلند میشوم و کنار روجا میایستم که دستش را رو گذاشته روی پیشخان و با دقت انگار مسئله طراحی اجزا است نصف غذاهای روی تابلو را رو سفارش میدهد من را که میبیند میگوید چرا بلند شدی؟ وسایلم روی میزه نمیبینی؟ حساب میکند و با هم برمیگردیم و مینشینیم. راحت نیستم. خودم را رو روی صندلی جمع مرد هم راحت نیست. با دلخوری غذایش را رها میکند و میرود. گناه داشت. داشت رو میخورد. محذب شد. دلشم بخواد ما سر میزش بشینیم. رو میکند به گارسون. گردنش را کج می کند و به شکمش اشاره می کند بعد وسایلش را کنار میزند و میپرسد چرا باز بیحی امروز مگه نمیخوای بری سر کار مشکلات حل شد دیگه مشکلا بیکاری بود آره بیکاری بود مگه نمی گفتی زندگی من فقط همهیه دل خوشی رو داشته دیگه چه مشکلی داری؟ پیش غذا من را میآورند روجا سالاد سیب زمین را جلوی من میگذارد بخور سر حال میشی من که با خوردن سالات سیب زمینی سرحال شده. به ساعت هم نگاه می دیگر به قرار چیزی نمانده اما شوق برایش تمام شده. کاش می فردا و تا شب همینجا می نشستیم. رجا می گوید تو رسیدی داشتم با سمیرا حرف می گفت او سه ماه دیگه شوهرش دفاع می کنه و برای چند هفته میان ایران. کاش وقتی تو می اونجا باشن که تنها نمونی. باید عادت کنم به تنهایی امروز گفتن باید برای سفارت یه نامه ببرم که توی اون کسی تایید کنه به من برای یه مدتی جا میده به صمیره گفتم گفت برای جور میکنم. کار سختیه خودش کار داره شوهر داره بچه کوچیک داره براش دردسر میشه نگران نباش صمیره دوست داره کمک کنه مامانم هم کلی ادوی آبادان و زفرون و سبزی یخ زده گذاشته کنار که براش ببری چندمزون تو زیاد پر نکن. گارسون لازانیا رو من میگذارد پیتزارا جلوی روجا روجا دوتا را میکشد وسط میز کنار هم یک لقمه از این میخورد یک لقمه از آن آشقی غذا خوردنش بودی میگفتی وقتی جلو چیزی میخورد سیر سیر هم که باشی هوس غذا میکنی چرا از سرم بیرون نمیروی امروز میگویم یادت میاد میساق به من میگفت لیلی قلبم هزار بار در ساعت میتپد فرق است میان اینکه در ذهنم تکرار شوی یا اینکه به زبانم بیایی به زبانم کیمیایی واقعی میشوی موج میشوی در هوا و دیگران هم میبینندت رجا شنیده و حالا دیگر تو را و لذت به یاد آوردن این را که شبیه هیچ کس دیگری صدایم نمیزدی با او شریکم عینکه گرد دورفلزیت را میزدی از بالای کتاب میگفتی لیلی یعنی تجلی معشوق در چشم عاشق یعنی خلوص عشق فارق از معشوق لیلی قده است و عشق شراب درون آن. باید قده را در دست گرفت و مست شد با شراب. آره می گفت لیلی. به نظرم رومانتیک تر از لیلاست. حالا چرا یاد میسا افتادی؟ دیشب خوابشو دیدم. من که گفتم امروز یه چیزی شده. یه امروزو رو بهش فکر نکن لطفا. هشت ماه گذشته. قضا تو بخور. امروز روز مهمیه. باید به چیزای خوب فکر کنی چیزی قلبم را فشار می‌دهد. راست می‌گوید. فکر کردن به تو خیلی وقت است دیگر خوب نیست. چه اهمیتی دارد که صدایم می کردی لیلی یا لیلا؟ چه اهمیتی دارد که مبل‌های خانه ما قرمز بود یا قهوه‌ای؟ کت نیلی تنم بود یا ای غذا خوردن رجا را دوست داشتی یا نه؟ مهم این است که نباید می‌رفتی. اما رفتی. نباید به تو فکر کنم. در روزی به این مهمی عادت کردی به قصه خوردن لیلا دنیا رو برای خودت کردی تکیه شام قریبان فقط سینه زن نداری بیا برو یه قبر درست کن برای برای و هر روز روون گریه کن اما باقی دنیا رو قبرستون دیگه قصه تو بخور دست میکشم به گلویم گلوله سفت باز برگشته و راه همه چیز را بسته گلوله‌ای که از وقتی ای توی گلویم مانده و نسخه هیچ دکتری رویش اثر ندارد دو ماه قرص خوردم و آنپول زدم و هر روز ضعیفتر شدم تا بابا آمد تهران. اما حتی او هم گلوله را ندید. گفتم خوب نمیشه بابا. هیچ جوری خوب نمیشه. گلوت که سالمه بابا جان. کی اینقدر آنتیبیوتیک برات نوشته؟ رجا دستهایش را رو روی دلش میگذارد و گارسون را صدا میزنم. آقا یه ظرف به ما میدی؟ باقی غذامون غذامونو میبریم. چشم قرره میرون بهش. برا� می بورجو و بازی در نیار تو که نخوردی دیگه چیکار داری؟ میبرم برای شبانه گوشی تلفنش را از کیف بیرون میآورد و شماره میگیرد سلام شبانه شرکت چه خبر؟ کارم یکم طول کشید بعدش اومدیم با لیلا ناهار خوردیم پیتزا و لازانیا دارم برات لازانیا میارم باشه گوشی را میدهد به من چه خبر شبانه؟ هیچی یعنی بعدا برات تعریف میکنم ناهار خوب بود. آره بد نبود. چیزی نمیخوای؟ درم ساندویچ میخواد. میگم رجا بگیره. ساندویچه چی؟ هیچی پشیمون شدم. بعد با هم میره میخوریم. مطمئنی؟ آره شب زنی میزنم بهت حرف بزنیم. رجا بلند میشود. میگویم با هم بریم رجا میره سنامت. گیوانه ای؟ توی این ترافیک بیای و برگردی به موقع به کارت نمیرسی. من از سر همین و با میرم. مگی چقدر طول میکشه؟ خیلی برگشتن اذیت میشی. به جای رسوندن من قدم بزن تا سر کار مغازه و مردم و شلوغیارو نگاه کن یه چیزی بخر. حالت جا میاد هفته تیر نزدیکه چیزی لازم نداری چیزی لازم ندارم چرا دارم روسری مانتو بلوز شلوار همه چیز همه لباسهایم کهنه شده مامان گفت بچه ملوک اینطور لباس نمیپوشد که تو میپوشی. می بگویم سمی را چند دست برایت بخرد و بفرستد؟ نمیخواستم اما حالا که قرار است بروم سر کار و خوب شوم، میتوانم همین حالا بروم همه را بخرم و با چند بسته پر از لباسهای نو مثل یک دختر 28 و ساله خوشحال بروم سر کار. بعد با لبخند به همه بگویم، از هفته تیر رد می شدم، اینها را دیدم و خوشم آمد. رجا خداحافظی می کند و با کیف و تمام کاغذهایش می جلوی ماشینم یک جای پارک خالی شده. ماشین را جابجا میکنم. میتوانم تا ساعت چهار قدم بزنم و بعد بروم روزنامه. پیاده میروم تا مغازه ها و مردم و شلوغی سر کنند. خیابان را میروم پایین و میپیچم به راست. بعد میفتم توی مفت و تا هفت تیر راه میروم. هر بار که میپیچم آدمها ها زیادتر میشوند و تندتر راه میروند. مثل ملکولهای های سیال با حرکت کاتور در هم میروند و از هم رد میشوند. پیاده و خیابان بین اتوبوس‌های بزرگ و ماشین کوچک پر از آدمهایی است که با هم و با تلفن‌هایشان حرف میزنند. لب‌هایشان کابوسوار میجم و کلمه های عجیب میگویند به زبانی که نمی شناسم. هزاران نفرند همه هزاران نفرشان انگار در سر من حرف میزنند. گرما دیوانه هم می بوق بلند اتوبوسی از جا می پراندن. کسی به من تنه میزند، خودم را کنار میکشم و در مغازه خلوت و خنک پناه میگیرم. نفسم که زیر باد کولر جا میآید، نگاه میکنم به دیوار مغازه که پر از جوراب های رنگی است. قفسههای های پشت فروشنده پر از روسری است و زیر میز شیشه ای گل سرهای پولک پولکدار زن فروشنده لبها و سینه های درشت و ابروهای نازک دارد و اخم کرده و با موبایلش بازی میکند. صدای شلیک و انفجار های رنگی میآید. موهایش زرد است و شال توری سیاهی روی آنها انداخته. نمیدانم حواسم به سینه بود یا لبهایش که موبایل را کنار میگذارد و میپرسد چه می خواهد. رجا گفت خرید کنم. نگاه میکنم به دیوارها ها و می گویم یک جفت جراب. باشه سرتونه. برداریم. چشم هایم بین جراب ها می گردد. از زرد به آبی و از قرمز به سیاه می و روی صورتی ها می مانم. روبان و دو گل کوچک سفید روی ساق دارند و خوبند برای شبانه میگذارمشان روی میز شیشهای میگوید پنج هزار تومان پولشان را که میدهم جورابها را در یک کیسه نازک رنگی میگذارد و باز با مبایلش بوی رنگی میترکاند میآیم بیرون سنگینی جمعیت روی سینم آوار میشود برای امروز بس است یک روز دیگر میآیم و هرچه لازم دارم میخرم یک روز دیگر که رفتم سر کارو خوب شدم میپیچم به خلوتترین کوچه و برمیگردم سمت ماشین سربالایی نفسم را بند میآورد رجا گفت برای اینه که تحرک نداری آمد توی اتاق دستم را کشید و برد به حال صدای آهنگ را بلند کرد و شروع کرد به حجم رنگارنگش چرخ خورد توی هوا ایستاده بودم کنار پیشخان و به دستهایش نگاه می کردم که بالا می رفت و پایین می آمد. دست مرا گرفت و دور حال تاب داد. برقص، دستاتو تکون بده و بچرخ. نمی تونه همیشه با این روحیه زندگی کنی؟ نمی توانستم بچرخم. صدای آهنگ در سرم شبیه صدای تفنگ و خونپاره و آژیر و موشک می شد. رجا دست مرا گرفته بود و می چرخید. پاهایش یکی در میان می روی پنجه روی پنج دستهایش مثل ماهی در هوا شنا کردند. گردنش را تاپ میداد و موهای فر بلندش در هوا پریشان می شد. چرا وای سادی؟ برقص لیلا یکم تکون بخور ببین بدنت شل شده مثل پیرازن ها؟ نمی توانستم مغزم ریتم آهنگ را نمیفهمید دستهایم آویزان و بلا تکلیف می ماندن در هوا و یادم میرفت نوبت کدام پاست که برود روی صدا داشت دیوانه میکرد نشستم روی و گوشهایم را گرفتم سوار ماشین می شوم. دارم نزدیک می شوم به کار جدید محیطی تازه با آدم های نو نو تازه جدید همه اینها خوب است باید خوشحال باشم باید به چیز خوبی فکر کنم مثلا به تو به تو که فکر می کنم مغزم به هیچ جای نارامی نمی پرد مثلا تو هستی و نشستهی کنارم و داری مرا میرسانی سر کار مثلا من چند وقت بیکار بودم و تو توی این چند وقت صبحها میرفتی سر کار و عصر که برمیگشتی خانه مرتب بود و غذا آماده مثلا من در این چند وقت بیکاری خانوم خانه تو بودم مثلا میگویی حالا که داری میری سر کار مجبوریم غذای بیرون بخوریم دیگه مثلا من میخندم و جوری نگاهت میکنم که یعنی این چه حرفی حرفیست که میزنی میگویی تازه داشت از بختت خوب میشد. نامردی دیگه، من کی غذای بدجلوت گذاشتم؟ بعد نفسی عمیق میکشم و میگویم خیلی نگرانم برای کار جدید. میترسم از پسش بر نیام. دستم را رو میگذاری روی دنده‌ی ماشین، زیر دست خودت. به دستم نگاه میکنم که زیر های بزرگت گم شده. میگویی نگران نباش. مطمئنم از پسش برمیایی بعد هم میگویی امشب خودم شام درست میکنم می از خوشی وقتی میرسیم انگشت هایم زیر انگشت هایت عرق کرده بعد جوری که انگار خیلی عاشقت هستم خودحافظی می کنمم و به سبکی پرنده ای که از درخت پریده تا دانه ای را رو از روی زمین بردارد از ماشین پیاده می ماشین را جلوی پلاکی که سالهی گفته پارک می کنم. ساختمان نوع قشنگی که جلوی در شیشه یش گلدان های بزرگ گذاشتند. هنوز سردر ندارد، اما همه چیز از شبیه روزنامه حسابی است. نگهبان کنار در روی صندلی پلاستیکی نشسته و با نگاهش دنبالم می کند. می گویم با آقای سالهی قرار دارم. تشریف بری طبقه اول سمت چپ. بالا می و برای شنیدن صدای آشنا گوشتیز می کنم ساختمان خلوت است و صدای تحریری روزنامه از آن نمی آید. سمت راست، اتاق کوچکی است که مرد مسنی در آن با تلفن حرف می زند نمی شناسمش دو کارگر میزی را از پله ها پایین می آورند. کیفم را بغل می گیرم و از سر راهشان کنار می وقتی می گذرند، سالن بزرگ سمت چپ را می بینم که پر از میز است. به خانه می ماند که دیوارهای آن را برداشته باشند. می دانم اگر حرف بزنم صدایم در آنجا پیچد. دو نفر پشت یکی از میزها نشستند و روی میز دیگری مردی تکه های یک کامپیوتر را چیده و بین آنها سرگردان است. دارد سیمهای رنگی پیچیده به هم را جدا و هر کدام را به جایی وصل می کند. گوشه سالن را پارتیشن بندی کردند و اتاقه که درست کردند لابود برای مصاحبه یا جلسه یا اتاق یکی از دبیرها گیجم و نمی باید سلام کنم یا نه صدای دریل می آید. مرد نگاهش را از سیمها بر و سرش را بلند می کند می با آقای صالحی قرار دارم چشم می اگر یکی از آنها سالهی باشد سرش را بلند می کند. بفرمایید بشینید. میزشون اونجاست. الان میان. سمت میزی در انتهای سالن می روهم. صدای پاشنم روی سنگ عصبی هم می کند. تا میز نکه پا قدم برمیدارم کیفم را میگذارم روی پایم و می نشینم. یادم نمیآید اینجور وقتها کیفم را میگذارم روی میز یا روی پا یا روی زمین یا آویزان می کنم به صندلی. پشتم به سالن است تا از فکر کردم به فضای باز خالی پشت سرم میشوم کاش سالهی بود یا یکی از مردها حرف میزد و این سکوت را میشکست نمیدانم چقدر در سکوت میگذرد تا صدای یکی از مردها بلند میشود امیر با تو کار دارم سرم را برمیگردانم مرد چاغی با موها و ریش بلند از پشت پارتیشن بیرون میآید بلوز سفید گشادی پوشیده که روی آن به خط نستعلیق چیزی نوشته شده دستهایش را با دستمال خشک میکند گرم و با لبخند سلام می کند. آنقدر که انگار مرا خیلی خوب می شناسد. بلند می شو و نمیدانم با این کیف چه کنم. میگذارمش روی میز. خیلی خوش آمدید. صالحی در خیالم یک شکل دیگر بود. مردی بود بلند قد و لاغر با عینک و بدون ریش و سبیل که لباس مردانه می پوشید. جدی و کمحرف بود و با دستهای همیشه در جیب بدون اینکه به کسی نگاه کند دستور میداد اما این سالهی صاف توی چشمهایم نگاه می کند و دستش را جلو می آورد دستش هنوز کمی خیست است و خوشم میآید از اینکه برایش مهم نیست نوشتهاتونو خوندم هم تو وبلاگتون هم تو مجله خوب می نویسید زاغر می گفت منظم و خوشقولم هستید می خندد لابد اهل خنده است که از منظم و خوشغ بودن کسی خندهاش میگیرد. من هم میخندم و خنده هم نشان میدهد خوشحالم. بچههایی که با ما میکنن بچه های بدی نیستن. غیر از ساغر کدوم می شناسی؟ منتظر جواب نمیماند. برای من مهمه که بچه ها با هم سمی باشن. کار بهتر پیش میره. البته به شرطی که نریم تو هاشیه. دوباره می خندد و من هم به خنده راه می دهم تا امیغتر در سینم فرو برود. در مورد کارم باید بگم که زیاد نیرو نداریم. بودجهی که داریم فعلا محدوده. برای هر صفحه دوتا خبرنگار داریم و کار کمی زیاد میشه. فکر کردم شما برای یکی از صفحات که باید تا از تمام بشه گزینهای خوبی هستین. موضوع صفحه سرگرمی های حوضه فرهنگه و برای مخاطب عام در میاد. چیزی مثل که کدوم بازیگر با کدوم کارگردان آشتی کرده، کتاب فلان نویسنده چقدر فروخته، چه کسی allele اسکار گرفتن چه کسی صحبت کرده، کدوم فیلسوف تازگی ازدواج کرده و نظرش درباره اون چی بوده و خلاصه موضوعاتی که عوام دوست دارن بدونه. خوشحالی از عمیق جای سینم بیرون میآید و مثل دود سیگار در هوا محو می شود. نگاهم را میبرم روی انگشت هایم. ای شده. شروع می کنم به کندنش. یه سری از مطالب تولیدیه اما بیشترشون باید از سایتهای خارجی ترجمه بشه. زبانت که خوبه، نمیخوام بشنوم. قرار نبود کار جدیدم این باشد. باید با یه کار فرهنگی واقعی رو روبرو شدم یه کار جدی، کار آدم بزرگ ها باید میگفت قرار است مصاحبه بگیری یا گزارش مفصل بنویسی یا نقد کنی. پاپاراتی بازی درباره ازدواج فیلسوفها قرار نبود کار من باشد. ناخونم را کندم و این بار از طرف دیگر کات شده. بخواهم درستش کنم میرود توی گوشت. به جهنم. این کار مزخرف را قبول نمی کنم. درباره بخش مالی کارم بهتر اول صحبت کنیم. ششصد و پنجاه هزار تو برای خبرنگار در نظر گرفته شده. زیاد نیست، اما سعی می کنیم به موقع پرداخت کنیم. باز می خندد. رو برمیگردانم از خنده عصبی کننده و بی تو چه فکر می کنی اگر بگویم آمدم روزنامه تا درباره ازدواج فیلسوف ها با نویسنده ها چیز بنویسم؟ اما اگر قبول نکنم زندگیم چه می شود؟ باز همان روزهای کشدار که شب نمیشوند باز بیخوابی، باز تلفن هر روز به شبانه و روجا و پرسیدن برنامه اصرشان برای تنها نماندن در غرپ های غمانگیز اگر قبول کنم شاید بتوانم بین همین بچه ها بمانم و بعد کار دیگری بگیرم اصلا شاید میخواهند اول کارم را ببینند و بعد بگویم برای صفحه دیگری برایشان بنویسم. دارم خودم رو گول میزنم مثل عاشقی که به جای بوسه سیلی خورده و با خود میگوید اگر با من نبود از میلی کار دیگری اگر بود همان را میگفتند دستم را روی تیزی ناخن کنده شده میکشم و قلبم محکم به سنه میکوبد. کاش سوهان ناخن داشتم این موقعیت های نفرت انگیز زندگی من کی قرار است تمام شوند تصمیم های زجرآور بین بد و بد بدتر و بدتر دو راهی هایی که انتهای هر کدامشان یک شهر سوخته است راه محکوم به شکست باید تنها راه باشد تا زجرش فقط زجر شکست باشد همیشه باید تنها یک راه باشد که بدون عذاب وجدان تا بروی و در آن از شکنجه وسوسه راهی که انتخاب نشده هر قدمت لرزانتر از قدم بعدی نباشد. باید همیشه تنها یک راه باشد. تنها یک راه. کار باید یا خوب باشد یا بد که بفهمم باید قبولش کنم یا نه. میگوید من همشو گفتم. شما چه خبر؟ زورم نمی رسد را با خنده دیگری جواب بدهم. موافقید؟ نظری یا پیشنهادی ندارید؟ نه نظر دارم نه پیشنهاد. فقط این کار را دوست ندارم کاش می توانستم بپرسم کار واقعی فرهنگی ندارید به من بدهید می پرسم همین حالا باید جواب بدم از ششات معلوم خیلی خوشت نایمده برو فکراتو بکن تا یکی دو روز دیگه به من زنگ بزن. می روزنامه روزنامره نشونت بدم؟ میگویم نه و تشکر می کنم تکه دیگری از ناخنم را میکنم و انگشتم میسوزد. توی مشت فشارش دهم و درد مثل یک صاعقه نورانی تا مغز استخوانم را می‌سوزاند. شماره را را می‌دهد. کیفم را که دیگر مزاحم نیست برمیدارم و خداحافظی می‌کنم. همانطور نشسته دستش را برایم تکان می‌دهد و می‌گوید منتظر جوابم می‌ماند. مردی که با سیم‌های رنگی بازی می‌کرد، آنها را سر جایشان چسبانده و حالا سرش توی کامپیوتر روشن روی میز است. با صدای بلند خداحافظی می‌کنم و بیرون می‌آیم. راه را و راه پله شبیه وقتی که وارد شدم نیست. دیوارها نزدیکتر شده و سقف کوتاهتر. همینطور که سوار ماشین می در سرم دنبال حسی می گردم که صاف و مستقیم توی چشمهایم نگاه کند و بلند بگوید خوب است یا بد. باید همین حالا تصمیم بگیرم. خانه که بروم دیگر نمیتوانم فکر کنم. خوبها و بدها آنقدر در مغزم به هم میپیچند پیچند که سردرد میگیرم و از تصمیم گرفتن میگذرم. می ترسم از انتخاب همیشه غلط. ترسی که از وقتی انتخاب کردم با تو نیایم هر روز با من از تو ته هر راهی که میخوام بروم طرح یک شک بزرگ را می کشد. اما حالا باید فکر کنم. تصمیم نبودن با تو را برای همه عمرم گرفته بودم. کارم ما امروز هست و فردا نیست. انتخابش همیشه راحت ترین تصمیم زندگیم بود. پولش برای مهم نبود. مهم نبود چقدر وقتم را میگیرد. با آن پیش رفت می کنم یا نه به دانشگاه رحب دارد یا ندارد. کار یا خوب بود یا بد. یا دوستش داشتم یا نداشتم. حتی اگر تو آن را دوست نداشتی. گفتی این کارا چیه که می نمیخوای درس بخونی نخون. به جاش پرو پیش شبانه کار کن تا برات سابقه بشه. با بالهایی که از شادی در ورده بودم از کتابفروشی باغ برگشته بودم. با پیرمردی آشنا شده بودم به اسم آقای فردوسی که آشق کتاب بود چند کتاب از او خریده بودم و داشتم برمیگشتم که گفته بود دنبال کتاب فروش آشنا با کتاب می گردند. از شنیدن عبارت آشنا با کتاب بالهای شادیم هم نک زده بود و حس کرده بودم این آینده من است که دارد بغلم می کند. به اندازه تو با کتاب آشنا نبودم اما آقای فردوسی گفته بود خودش همه چیز را یادم میدهد. از درسمان چند واحد بیشتر نمانده بود. شبانه رفته بود کار آموزی در یک شرکت مهندسی. کاری که دوست نداشتم. رجا شاگرد خصوصی داشت و میخواست ارشد بخواند. من نمیخواستم. تو هم پایت را توی کفش کرده بودی که باید جمع کنیم و برویم. هر روز یک بقل مدرک ترجمه شده و توصیه نامه و فرم را میشه و میچپاندی توی یک پاکت نحس زرد زشت، میرفتی رفتی پستخانه مفطعه و میفرستادی به هزار گوشه دنیا شرق و غرب و شمال و جنوب متنفر بودم از پاکت هایت. اما میدانستم نمیروی بدون من تنها چیزی که میخواستم کار بود میخواستم پیدایش کنم تا بدانم فردا کجا هستم و پس فردا و ده سال دیگر میخواستم مثل درخت خودم را و تو را توی همین زمین بکارم و پایمان را همینجا محکم کنم که هیچ وقت نتوانی جایی بروی بدون من من مهندس نمی شدم. بیبند و بارتر از آن بودم که کسی بخواهد صبح زود بکشانادم سر کار و پای امضا و قرار داد. با روجا می خندیدید که مثل برگ گللای حریر بزرگم کردند و سختی کشیدن پجمورده هم می کند. آن روز هم خودم برای خودم کار پیدا کرده بودم. توی کتاب کوچکی کلای لای هایش بوی خاک مانده روی شیرازه کتاب می آمد و مشتری هایش بودند مثل تو. به آقای فردوسی گفته بودم پولش مهم نیست، از فردا می آیم و با بالهایم آمده بودم خبر خوشحالیم را به تو بدهم. باید خوشحال می شدی از اینکه بالاخره فهمیدم با اینکه بابا همه پول زندگیم را میدهد لازم است بروم سر کار. از اینکه با کتاب باز هم نزدیکتر می شدیم به هم. کنار پیشخانه آشبازخانه استادیو من دور خانه راه رفتم. راه رفتم و گفتم میخوا چیدمان قفسه ها را عوض کنم و نویسنده های هر کشور را یک جا بچینم گفتم میخوا بگویم یک پیانوی دیواری بگذارند گوشه کتاب روشی تا برایشان ساز بزنم گفتم وقتی مشتری نیست میشینم روی صندلی ته سالن و همه کتاب ها را میخوانم تا تو بیشتر دوستم داشته باشی گفتم چه معنا دارد تو شبانه همه کتاب دنیا را بلد باشید آن وقت من فقط چند رمان بی اهمیت خوانده باشم. گفتم وقتی همه کتاب‌ها را خواندم با هر کسی که آمد کتابفروشی حرف می‌زنم و بعد از اینکه فهمیدم چی دوست دارد بهترین کتاب را به دستش می‌دهم. بعد منتظر می‌مانم تا روزی بیاید و بگوید از کتاب خوشش آمده. گفتم اصلا کمی که بگذرد کتاب کتابفروشی باز می‌کنیم. گفتم هی دستهای خاکی از کتابم را با منتوم پاک می و وقتی میایم خانه دو طرف منتوم کثیف است. جیب هایم را نشان دادم و گفتم اینجا، همینجا خاکی میشه و خندیدم. اما تو نخندیدی. همانطور که تکیه داده بودی به پیش خان، گفتی چرا نمیفهمم این کار مناسب ما نیست. گفتی این همه درس نخاندم که کتاب فروشی باز کنم. گفتی بهتر است تا دیر نشده به خودم بیایم و اگر نمیخواهم درس بخوانم برای خودم سابقه کار جور کنم تا بتوانم پذیرش بگیرم چون تو به هر حال می‌روی و ما باید با هم باشیم گفتی بهتر است پاهایم رو, رو روی زمین بگذارم و زندگی را واقعی ببینم گفتی واقعی واقعی مثل همه مردم نه مثل زندگی بابایت دیگر راه نمیرفتم پرهای شادی هم دیگر نبودند و کتاب فروشی باغ دیگر هیچ جایی از قلبم نبود. پاهای من روی زمین بود. اگر تو پاهایت را رو از روی زمین برنمی‌داشتی و سواران هواپیمای لعنتی نمی‌شودی. برای تو زندگی واقعی یک چیز بود و زندگی من شبیه زندگی واقعی تو نبود. من دوست داشتم معلم و کتاب فروش و سولیست پیانو و روزنامه‌نگار شوم. از هیچ کدامشان کوتاه نمی‌آمدم. یکی را که شروع می کردم دلم برای آن یکی پر میزد و سراغ آن یکی که میرفتم هوای دیگری را می کردم هرچه به خانه نزدیکتر تر می شوم کمتر دلم آنجا را می خواهد. دلم میخواهد ترافیک تمام نشود لای نورهای قرمز و سفید ماشین ها بمانم دلم به هر چیزی راضی می شود به تاریکی و سکوت خانه دلم میخواهد با چند نفر قرار شام بگذارم در رستورانی نیمه تاریک دور میز بنشینیم غذا بخوریم و با صدای بلند به همه چیز دنیا بخندیم. آدم میزهای میز کناری با اخ نگاهمون کنند و ما باز بلند بلند, بلند بخندیم. متنفرم از اینکه مثل هر روز تنها برسم خانه کسی نباشد در را برایم باز کند و مجبور شوم خودم کلید بیاندازم. متنفرم از اینکه شبها خودم چرا را خاموش کنم. از اینکه بعضی وقتها صدای خودم را بشنوم که دارم بلند بلند, بلند با خودم حرف میزنم و از فکر اینکه دارم دیوانه می شوم هر بار بیشتر از قبل بترسم. دلم نمیخواهد بروم خانه. امروز نه. رجا کلاس دارد میدانم. میتوانم بروم پیش شبانه. دلم میخواهد تا صبح با ماهان حرف بزنم و اون مات نگاهم کند. فقط نگاه کند و مثل همیشه چیزی نگوید. خیره میشمم به صفحه موبایل و نمیفهمم باید شماره بگیرم یا نه. حوصله ندارم. حوصله خانه را ندارم. حوصله شبانه را ندارم. حوصله خودم را هم ندارم. موبایل را میاندازم توی کیف و میپیچم توی سیاهی پارکینگ. در را که باز میکنم سکوت خانه خالی کوبیده می شود به صورتم و هوای سنگین آوار می شود روی سینه‌ام. پنجره های خانه را باز می کنم تلویزیون را روشن می کنم تا چیزی کنارم تکان بخورد همین که تکان بخورد کافی است حس می کنم کسی در خانه نفس می کشد حتی اگر پشت شیشه زخیم تلویزیون باشد نور کمرنگ عصر هنوز در خانه است اما چراغ ها را روشن می کنم تا غم غروب نتواند قافل گیرم کند می نشینم روی کاناپه قرمز و کانال ها را عوض میکن چیزی برای تماشا کردن ندارد. کامپیوترم رو روشن می کنم. صفحه فیسبوک، وبلاگ، ایمیل. هیچ خبری نیست. باید زنگ بزنم کسی بیاید اینجا. باید زودتر کاری پیدا کنم و اصرها خانه نمانم. خانه خالی دیوانه هم می کند. دیوارهایش هر روز به هم نزدیکتر می شوند و آخرش یک روز که خیلی دور نیست وسط خودشان دفنم می کنند. یا باید تو باشی یا کار؟ زندگی جور دیگری نمیگذرد؟ باید بروم سر کار هر باشد؟